باینسایرس، آرژانتین، 20 می هارون قدمی به سمت عقب برداشت چهارچشمی مرد چشم بسته و دستبند زدهی رو میپایید که مقابلش نشسته بود. ده روز گذشته بود و آنها در خانه ای امن در خومه آرام شهر باینسایرس حضور داشتند. آرام دستش رو جلو برد و چشم را از چشم زندانی کنار زد. زندانی به خاطر شدت نور تونتون پرد زد. در مدت ایستراتش هیچ نوری ندیده بود. هارون با یک دست قوطی رنگ را برداشت و در همان حال با دست دیگرش چانه آیشمن را نگه داشت تا تکان نخورد. سپس شروع به پاشیدن رنگ نقره‌ای به موهایش کرد تا کمی او را پیرتر نشان دهد. بعد از اینکه کار موها تمام شد، ابزار گریم را برداشت و سه خط روی پیشانیش اضافه کرد. تا چینوچورک با پیری و سالخوردگی که برای گمراه کردن ایجاد شده بود هماهنگ باشد. یک قدم به عقب پرداشت. سپس یک سیویل روی لب... لب بالای مرد سپید موچسبان. به دین ترتیب کار تغییر قیافهی که برای روز رفتنشان در نظر داشت به اتمام رسید. کاپیتان زوای توهار به ساعتش نگاه کرد. پنج دقیقه به دوازده ظهر مانده بود. او در لابی هتل نشسته و منتظر رسیدن سرنشینان هواپیمایش در ساعت دوازده بود. چیزی نگذشت که همه جمع شدند. رئیس با صدای آرام شروع صحبت کرد. ما نزدیک نیمه شب با این نسایرس رو ترک میکنیم. از حالا تا موقع رفتن هیچ کدوم از شما نباید از هتل خارج بشه. نه کسی حق داره به گردش بره و نه بازار. همه باید با لباس رسمی در باشند. چمدونهاتون هم هر لحظه باید برای رفتن آماده باشه نمیتونم بیشتر از این براتون روشن کنم که چه شخصیت فوقالعاده مهمی همراه ماست و ما داریم با خودمون میبریمش مقابل ورودی ویژه مسافران هواپیما در فرودگاه بینالمللی ازیزا یوسف کلاین مدیر ایستگاه پرواز فرودگاه بینسایرس بحثهای بیمنی با رئیس بخش حراست تبادل میکرد تیه یک ماه گذشته دیدارهای روزانشت با آنها الزامی شده بود. در ابتدا دلیل آن آمادگی برای فرود اولین هواپیمای غیرنظامی اسرائیلی در بای بود. اما اکنون و بعد از رسیدن هواپیما، این دیدارها جهت آمادگی برای بازگشت انجام می شد. اما امروز هدف کلاین بهرهبرداری برداری از رشته دوستی هایی بود که در طی یک ماه جمعآوری کرده بود. و برای تسهیل ورود مسافران هواپیما با کمترین میزان تشریفات معمول خیلی تلاش کرده بود میخواست مسائل امنیتی چندان شدت نداشته باشد و استقبال از مسافران دوستانه و با تشریفات سبک انجام شود تا آنها مستقیم و بدون هیچ سؤال و جوابی وارد شوند و هواپیمایشان نیز در بخش ویژه مستقر شود هارون کار پوشاندن لباس عالی خلبانی بر تن زندانی را به اتمام رساند. یک پیروهن سفید که در قسمت شانه اش تناپایی بسته شده بود و یک شلوار آبی که نشان میداد او یکی از کادر پرواز است. در همون حال باید یک کلاه لبه دار هم زیر بغل نگه می داشت که مزین به علامت ستاره داوود بود. در آخر نگاهی به سر و شکل زندانی انداخت. و پس از آن او را به طرف پله ها راند. و به طبقه همکف آن خانه امنیتی برد. وقتی به آشپزخانه رسیدند، او را رو روی یک صندلی وسط اتاق نشان. مرد وقتی ابزار روی میز را دید، نگران شد و با ضعیف به هارون گفت: نیازی به تزریق نیست. من آرام هستم و هیچ مقاومتی نخواهم کرد. چند لحظه بعد، دکتر کاپلان آمد و روبروی نشست. آمپول را برداشت و شروع به پر کردن مایعی در داخلش کرد. مرد وحش زده تکرار کرد: نیازی به تزریک آمپول نیست. اینطور به نظرش می رسید که آنها آماده ی کشتنش هستند و گریم و تغییر قیافه هم فقط یکی از اقدامات برای خلاص شدن از جسد او بعد از مرگ است. تجربهش در مقام سابقش به او هشدار می داد که از تذریق و هرچه بدان مربوطه است بترسد. چه بسیار درباره کسانی شنیده بود که به دست دوستان سابقش به وسیله یک تذریق جان خور را از دست داده بودند. کابلان با اطمینان نگاهش کرد نه ترس چیزی نیست اینها آرام بخشه یه روز طولانی در پیش داری و اینها بهت آر... کمک میکنه آرامش داشته باشی دکتر به هارون اشاره کرد که دست مد را نگه دارد و نگذارد و حرکت کند سپس دو آمپول یکی بعد از دیگری به او تزریق کرد چند دقیقه نگذشت که زندانی احساس گیجی کرد زبانش سنگین شد و تقریبا از سخن گفتن بازی ساد. توانایی حرف زدن را از دست داد. نسبت به اطرافش نیمه هوشیار شد. چشمانش سیاهی رفت و بدنش کاملا بیحس شد. ساعت 6 عصر هارون با یک خودروی دیپلماتیک از سفارتخانه بازگشت. لباس راننده ی سفیر را پوشیده بود. پرچم اسرائیل جلوی ماشین در احتزاز بود و همین باعث می‌شد های بازرسی در مسیر فرودگاه اتومبیل را برای بازرسی متوقف نکنند. دقایقی بعد، آیشمن از خانه خارج شد. دو مرد در لباس مهماندار ویژه هواپیمایی مازیر بغلش را گرفته بودند و او به آنها تکیه داده بود. وی را داخل اتومبیل نشاندند. یکی از آنها کنار او نشست. دکتر کاپلان نیز در طرف دیگرش جای گرفته بود. هارون به سوی فرودگاه بین المللی عزیزار راند. سعی میکرد از مسیر خیابانهای اصلی نرود. حدود نیم ساعت به مسیر ادامه دادند تا اینکه مقابل خود اتوبوس مخصوص مسافران هواپیما را دیدند که حدود یک کیلومتر قبل قبل از ورودی فرودگاه منتظرشان بود. سرنشینان اتومبیل حامل زندانی پیاده شدند. زندانی همونطور که دکتر میخواست در حالت نیمه هوشیار بود. وقتی سوار اتوبوس می‌شدند همه ساکت بودند. سکوتی چولانی تمام فضا را گرفت، فرا گرفته بود. بیشتر از دو دقیقه نگذشت که نگهبان ورودی،, ورودی کارمندان آنها رو متوقف کرد سرباز مسلح به سمت پنجره راننده رفت اما قبل از اینکه سوالی بپرسد صدای یوسف کلاین از پشت سر او بلند شد که به زبان اسپانیایی میگفت اینها مهمان های من هستند دوست من نگو که قصد بازرسی اونها رو داری که این کار باعث میشه جلوی دوستم خجالت بکشم چون من همیشه ادعا کردم که با همه کارمندان فرودگاه بوئنوس دوست هستم سرباز آرژانتینی خاندان به کلاین نگاه کرد. سپس به دوستش اشاره کرد که در ورودی را باز کند و بلافاصله به اتوبوس اشاره کرد که عبور کند. توقف بعدی اتوبوس پای های هواپیمایی بود که در باند فرودگاه منتظرشان بود. قبل از پیاده شدن، کاپیتان توهار آخرین سفارش ها را به مسافرانش یادآوری شد. یک دایره به دور تشکیل می‌تشکیل میدیم و به صورت یک گروه بالا میریم. به پشت سرمون هم نگاه نمیکنیم گروه شروع به بالا رفتن از پله های هواپیما کرد. دو مرد زندانی نیمه هوشیار را در میان گرفته بودند یا به عبارت بهتر، پله پله او را به دنبال خود می کشیدند. مقابل در ورودی هواپیما، سرباز نگهبان از دیدن مردی که او را کشیدند متوجب شد. کاپیتان توهار دستش را بلند کرد، بعد بر کتف سرباز ضربه‌ای زد و خندان به زبان اسپانیایی دستو پا شکسته گفت: نمی‌تونه در مقابل شراوا بارژانتینی‌ها مقاومت کنه. همه وارد شدن اما قبل از اینکه خود کاپیتان قدم به درون هواپیما بگذارد ناگهان دید یک نفر از پای پله‌ها او را صدا میزند. کاپیتان کاپیتان وقتی دید یک مأمور امنیتی را صدا میکند، زربان قلبش تند شد چند لحظه بعد مأمور کنار او در مقابل در هواپیما ایستاده بود اینجا روی برگه خروج را امضا نکردین تو نفس راحتی کشید و جایی, و جایی را که مأمور بان اشاره کرد، امضا کرد داخل هواپیما شکار با ارزششان را در ردیف دوم سندلی های درجه یک نشاندند و دکتر در طرف دیگر و سمت راه را نشست یک خانم مهماندار پتوی به دور زندانی پیچید و سپس کنار او نشست سر خود را روی شانه های او گذاشت و چشمانش را بست همه اینها مطابق های رئیس هواپیما بود برای اینکه در نظر دیگر مسافران تظاهر به خواب کنند موتورهای هواپیما روشن شد. کاپیتان شروع به صحبت در میکروفون هواپیما کرد. چیزی نگذشت که هواپیما آماده پرواز شد و خلبان از مسافران خواست آماده باشند. قبل از حرکت هواپیما هارون مقابل صندلی مهمان توقف کرد. به سمت او خم شد و در گوشش زمزمه کرد: تمام اسرائیل منتظر تو هستند، جناب آیشمن